این غزل راهی بدن که آهی مونده بود اه، اینجا یه بیتون بالا داره بیت سیفان میگه قط خمیده ما سهلت دماید اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان طرم اینو میشه یه نشونه گرفت بر اینکه حافظ در موقع سرودن این غزل سنی ازش گذشته باشه برای اینکه هیچ به نظر نمیزید جوون سی سالهی، مثل 25 سالهی، و یکی قتل خمیده ما معنی نده بنابراین حافظ درستانین کمل و درستانین پخدگی بوده و این قضا لسته بعد در این بیت هشتون میگه عشق و شباب و رندی مجموعه مراد هست چون جمع شد معانی روی تمام این اشاره به طرفشی که در, جو... در سمین جوانی و میگه که احتمالا طرف جوان که بوده عرض کنم که رند بوده به قول خاجه یعنی آدمی به همون تعبیری که رند رو خداحافظ می کنه یعنی آدمی که خیلی چیزا سرش میشه و تجربه همون خرست و, و چیزایی دیده است و خوبشیه سرشایی داره و این, این تیب جوانم هست عشق و شباب و رندی و اجموعه مراد هست احتمالاً شاید نظرش رو شاه شجاع باشه برای اینکه دوره شاه شجاع دور میزنی دوره خیلی مفصلی از زندگی حفظ در دوره شاه شجاع بوده و شاه شجاع وقتی مردم خیلی سنی نداشت پنج و سه چهار سالش نبود که مرد و در دوران جوانی دوران حفظ دوران کمال زندگیش دوره جوانی شهر شجا رو درد احتمال قبلی نمیست بعد میگه عشق و شباب و رنگی مجموعه یه مراد هست. دنبالش میشه اون کلمت کلمات با اون کلمت ستاره گرفت چون جمع شد معانی بود بیان تمام زد درست دیگه آدم اگه حرفی برای گفتن داشته باشه میتونه بگه او وقت گفتن که مرحوم علا مدیر پول بند بود الان قصر کرده اروپا بود و زبان های و انگلیسی رو خیلی خوب به حد که می دونست و عدبیات چینا تحصیلاتو خوب کرد. بعد یکی از این بچه که رفته اروپا و درسی هم نخونده بود و چیزی هم یاد نگرفته بود و همیران سه چاست زبان در حد این ریسپشنیست های هوتل هاونی یاد گرفته توصیه کردن به که آقای جعفر خان از و. لطفا اساتید که خیلی آمدن به استفاده از زبان تحصیل کرده تو از وجودشون ایشون استفاده بفرموینوا الان که می‌دونسته که این میگه که خب این آقای جعفرخون که از فرنگاش باوردن رو چهار پنج زبانم صحبت میکنن. آیا حرفی هم برای گفتن به این زبانها دارن یا خیر حالا مسئله چون جمع شد معانی گوی بیان توان <تص> زد همینه اگه هر هرچی داشته باشه مطلبی داشته باشه خب میتونه بگه برای اگه چیزی نداشت و دوباره سوزن و زرانه از سر همونهای تحکار کنه این که نمیشه این معنی ساده قصه اما وقتی به روش حافظ این کلمه معانی و کلمه بیان یه معنی دیگر هم داره و اینا اسم دوتا دو علمی علم معانی و علم بیان خدا به سلامت بذاره استاد دکر سفارو و اینو در سال تحصیلی 19 نیست و در مرسا الورز کلاس پنجم متوسطه بودن، پنجم علمی یکی از درست های این معانی بیان اول خود قضی رو خدمتون بگم، بعد بگم که چیه میدونید که وقت زبان ادام میخواد بخونه، زبان اولین قواعدش قواعد دستی زبان بر دستور میگن بستور علمیست یا است که از خطا و زبان جلوگیری گیری میکن و اگر کسی دستور رو رعایت بکنه درست میخونه یا میمیست اما آیا کافیه که کسی یه زبانی رو وقتی میخواد فرا بگیره دستور رو یاد بگیره و فقط درست حرف بزنی جواب این است برای اینکه بعد از درست حرف دادن تازه باید به فکر زیبا حرف باشه برای اینکه کلام که مثل چپ که تاثیری نداره به خصوص اگر بر فکر کار آفرینش هنری برای زبان باشه و به زیبا حرف بزنه اون وقت باید یه چیزی فراتر از دستور یاد میده چیز فراتر از دستور چیه؟ دو علم علمی، یکی علم معانی، و یکی علم پوام. بر علم معانی صحبت میشه درباره فسراهات و بلاتف. فسراهات آسیش میشه شیواي، بلاتف. باستیش میشه غصایی ولی اینا هیچ مشبه رو حل نمی کنه. یعنی خب شیوهی ولی شیوهی چی باز باقی تعریف فساحت عبارت است از حالی بودن حالی بودن کلام از عیب های لقزی و محنت کلام رو میگن تصدیح تو از عیبهای لفظی و معنوی خالی بشه. البته باز فصاحتم دو جز داره ایکی فساعت کلمه است یکی فساعت کلام یعنی کلمه هم به تنهایی باید عیب نرشته باشه کلام هم باید عیب نرشته بشه. این این ها بعد تقسیم میشه چون من اینجا که ما نگاه نمیخوام درسودم نمیتونم درسودم برای اینکه باید مطالعه کنم درسودم این ها، بعد تخصیل میشه به عیوب لقصی و عیوب معنبی یعنی عیبهای ظاهری و عیبهای باطنی برای مثال مثلا اگر بخوان عیب کلمه رو بگیم کلمه ای که کراهت در سم داشته بشه یعنی به گوش خوش نیاد این کلمه رو به کار بودن در کلم باعث عیب کلم کلمه‌ای که تنافر وروف داشته باشه یعنی وروفش مخرجاش از هم دور باشه یعنی بودا رس کنید این کلمه رو را... این چیز تنافر وروف دارید یعنی مخرجای کلمات خیلی از هم دوره و تلفز جسمه زحمت. این روی ایوای لفظ ایوای کلمه است ایوای کلام هم همین جور مقداری هست یه قسمتش مثلا تعوید لفظی و تعوید معنوی ضعف تحلیفه مثلا نمیدونم چه دیگه هست تعوید لفظی یعنی کلام طوری باشه که پیچیدگی اش خیلی بعدا مجبور باشه این کلمه ها کلمه ها رو که جمله مثل خونرهای شدرنج این بران برکنه تا معنی به تو بکنه من برای مثال تغییر لفظی به تو که ما ناصر خسوح هست می نیستم براتون یک پسندست باز دفت امار و ذر کند من معنیش این است که آیا پسندیده است که اون سلطان محمود را با زهد عمار و عمارو گزار عشق بکند یعنی همه جوهاش یعنی باز به اون سوری را پسندیده است که با زهد عمار و عمارو محمود را معن یعنی میگه محمود زهد عمار و عمارو گزار اینو بهش میگم تعریب لا یعنی پیچنیوی و الفاظ و در همه چه آدم نمیتونه یا تعدید معنیبی معنی در ما طوری انتخاب شود که معنیش شرق آسون درچ نمیشه مثلا این به که دیگه برای در یه از All the rule and she. از برای دفت یا عجوز هوا از آب خوش جوکیان صدی به روی آتش تر آب خوش یعنی شیشه. آتش ترم یعنی شراب در مجاورت هوا بذاری خراب میشون یعنی هوا درش اون میکرو درماثبتی این تبطیل میکنه به سرکه برای این یه در هوا هست این میکروب میگه برای اینکه یه هوا رو دفت رو کنن از آتش تر اومدن از آب خوش گروش سد بستن یعنی شراب رویستن رو توی شیگرش بستن که هوا رویش تصرف میکنه نمیدونم شاد من صاحب بشیم نمیدونم و این زیاد آقای دوکرسفای یه بیت دیگری رو بر ما در اون سال مال سایب میگه دل آسوده ای داری چه می پرسیز آرام ها؟ نگین را در خلاخم می نهد بی تابی نام ها. دل آسوده ای داری چه می پرسیز آرام معلوم ولی نگیم دادار فلاحان میننده بیتابی نامه می تو میتونم فلاحان چیزی که انجام پرتاب میکنم میگه که من اینقدر ر از عشق که اسم من بیتابه و اس من اینگا ر اگه اسم من رو نگیم بکنن اون نگینه بیتاب میشه چیز گوییم که فلاحان <تصفح> اینها نمونه های تقریبی خالی بودن کلمه و کلام از عیب لفظی و محن ندید. تنابراین فسبیح آدم ایست که کلامش عیب است. اما همین آدم با اونگه فساحت بلیق امکنه نداشه. بلاقت چیه؟ نشید میسه نشید که حالی بودن کلنه و کلنه این به تراسل که پساعت بلاغه یعنی ایراد نماز بلاغت یعنی گوینده مبز مجلس دستش مش اگر مجلس اقتضای این می‌کنه که کلام مختصر کنه مختصر کی چشم انتخاب داشت نگاه کنه نه خسته شدم نه اینکه شدم هم بیرسال داشتم اگر ببینه که نگاه میکنه اینه که نشون میده نگاه اینا که هیچی نفمیدن از با اون این باقون میزه که الان باید ذاره پاینتر بیاره سازدار بخونه بگر که لازمه توضیح زیاده توضیح زیاد اگر مجمع ازیاد دانشمندانی که مسالی رو میدونن به اشاره کوچیک اتفاق کنه و بره مثلا فقط بگه که اینجا هم همه تناسات بره دیگه دو ساعت کنه از براجه یه همه تناسب تقریبا همه میدونن حرف زن این که گفت که چون که با کودک سرفر از کوتاه پس زبان کودکی باید گوشد زبان کودکی با کودک گوشادن یا با مجمعی به تاکید سخن گفتن یا به اتناب و تطویل سخن گفتن یا به اختصار سخن گفتن یا سطح کلام رو بالا بردن یا پایین آوردن به تناسب محتضیات مجلس این یک بلاقه هست آدم بلیغ آدم نیست که نبز اون مجلس بستش کشه آدم فصیح باشه ولی پدر مردم بردو است. اینکه موقع رو که به چه ترتیب هر چه این دوتا که باشه موضوع علم معامی است، موضوع علم معامی فصاحت و بلاقه و دونه, دونه این مسائل رو در اونجا علم دروم علم بیان البته این هم درسه بگم به دانشوی ما داشتیم که خیلی پسر خوبی بود و الان دانشمندی شده برای خودش استاده در, در تهران سیروس شمیسا این از اول دکتر و البکتر شده استاد شده از اول میل درش به جانه و عروض میده این صناعیه شعری و همین مسئله این مسئله چند تا کتاب راجب معانی، راجب بیان، راجبه عروس، راجبه اینا کتاب های متعدد نوشته که همش کتاب های خوبیه و اگر کسانی از شما میل دارین که در این مسائل با دقت بیشتری مطالعه فرمیم کتاب های سیروس شمیسا خوبه در این بار هم بیان هم معانی هم و عروس و این علم بیان علمبحث تو در مهناز یک کلمه یا یک کل دوش گاهی به معنی اصلی که براش به کار بردن یعنی ساختن کار نون میگن برای اون پذیرایی که از گندم ساخته شد یه نون میگن اونی درامات مادوخه مثلا این معنی دیگه است. اونم میگن معنی حریقی یکی رو میگن معنی مجازی. بعد بسیاری از کلماتی که ما به کار میبریم و بسیار از جنبه هایی که به سوال داریم اینا معنی حقیقشی ندارید میگه هم بلانگست بندونش گرده بندون گرد بندون گرد یعنی چی؟ یعنی تمکار عربی میگه که کسی رو رماد. رماد یعنی خاکستر بلانگست خاکسترش بسیاره یعنی آدم دستگیل باز بسیارش باهم میکنه خاکستر خیلی طور. یا مثلا طبیل و نجات این همایلی که می اندازه بلنده یعنی آدم رشید که بقیه زور اولیست پهلمان است اینا رو بهش میگن مجاز که خیلی زیادم هست و ما اگر که یه روزی توان گفتگون رو و مردم پیز اپسود زبت بکنیم و بعد بشینیم و دقت بکنیم میدونیم که بیش از نصف جمله هایی که به کار بردیم به معنی مجازی چیز بیان موضوعش همین بحث درباره برای مجازه که مجازم تحصیل میشه به سه قسمت بسیار مهم یکی تشبیه، یکی استعاره، یکی کنایه حالا باز گفتم من وارد این بحث نمیشم برای اینکه اگه بخوام شروع کنیم باید تشبیر بگیم و انواع تشبیر بگیم و ارکان تشبیر و بعد استعاره بخوانم بگیم بعد کنایه رو هم بگیم نمیشه به هر حال علم معانی هست و علم بیان اینا علم فراتر از بستور زبانه یعنی است که بعد از چیز اونو نیست که ناظره بر زیبایی کلمه بعد از برست. بنابراین وقتی که عوض میده چون جمع شد معانی گوی بیان زد در این حال اشاره به این میکنه که آدمی که معانی بیان بلب باشه این آدم ها خود میتونه درست هر از بلب نگوشه نه عشق و, و رندی مجموعه ازمون این رو داشتیم برای اینکه این توضیحات توضیحات نسبتاً ما فهصلی است و نمیشد اون شب بدیم که درستیم برای جلسه ای برد ش ظلفت تو یه همین مجازه نیست ظلفت میگه راهزن سلامت راهزن اونی که سر را رو میبورد سلامت چیزی نیست که سر را شو گیره به کلی میبینی که کلمه به به صورت مجاز به کار رفته چود راهزن سلامت ظلفت تو مثل که قبلا گفتم حالا اگر نگفتم دوباره میگم دوباره هم بگیم حب نداره چون چنوندگان های عوض میشن ظلف به معنی تمام موی سر نیست موی سر به خصوص خانونا که داشتن میدونید که اون قسمتی از اون رو که میتابن و بعد میبافند و معمولا به پشت سر یا پیش رو میاندازن او رو بهش میگن گیسو و چوزی هم میشن مع هم میش که چیزی نیست کسی ن گی سوپ وفعل هم بهخوا دوش در عللقه ما حسه گیسود تو بود تابددل شب سخ از تسلله مونگ تو. زز عبارت از از اون قسمت از می سر که میارند روی پیشانی و دو طرف بعد و این گفت، به صورت های مختلفی و بعضی خانه دو تا از این صحابی رو می اینجا هاشون یا یه مدداری روی چیز که هنوز هم مثلا قسمت مویی که می زن روی که فیلی اینجا درست و انیز صحیحش بکار رفته اون قسمت از مو که میاد روی چهره و اونجا جلبه می کنن و عرضه اون قسمت روش می کننی زولف باقیش میگه ظلفت تو رحزن سلامت بعد طبیلی است که لازم توضیح نیست که ظلف و آرایش ظلف برای بالا بردن مقدار زیباییه طبیلی است شد رحزن سلامت ظلفت تو خانم هم وقتی که گفتمش ظلف به خونه کشف هست گفته حافظ این قسطه براز به قرآن که نفرش ظلفو که چیز نفرم بلاختا یه فس بیده دیگه بس. ارز که شد رحزن سلامت ظلفت توبین عجب نیست گر رحزن تو باشی صد کاربن قدم زد از این زیباتر واقعا نمیشه شد رحزن سلامت ظلفت توبین عجب نیست گر رحزن تو باشی صد کاربن قدم زد و این زدن میبینید به عنی دیدن به کار زدن دوبان، ثبت کارگان طبان زد، کارگان اینجا زد زد زدن درست به همی قارق کردن رو دزدیدن و از قدیم از هزار سال پیش این استعمال داشته کارگانی <تصفيق> زده شد کار رو گرمزی شد تو تاریخ بیهاوی امده از یه،, یه بیت ای داره از مثل لبیبیه، سید شعره که یه مصراش که بعد خیلی ضرور نسل شد هم کاروانی زده شد کارو جروحی سره شد این شبیه از اون مسئله عوامونه که میگن تا خاری بشت یعنی نصیب بریزه جهنگرار بکن خاصه این همونه کاروانی زده شد کارو جروحی سره شد و چطرحزن سلامت ظلفه ترکین عجب نیست گر رحزن تو باشی سب کاروان پرند حافظ حق به قرآن کسی چهی بازد باشد که دوی ایشی گرد اینجا هم تمنده این شگرد دائمی خاجه هست یه بار اینجا عرض کردم را جیبه این حافظ وقتی چیزایی رو میخواد بگی که به هر کسی بگه امکنه اوشت بر بخوره و خواهر چه خانه بکنه به خودش میگه میگه حافظ دست دارو از این زرگ و شیدی که داری. حافظ این خرگه پشمینه بی انداز که ما از په قافله با آتش آه همه دیم حافظ این خرگه که داری تو ببینی روزی که چه نرز زیرش به جفا میخور که شیخ و حافظ و مفتی و محتصب نیک بنگری همه تازگیر می کنند اکثر جاها خودشو میگه با این تنزه بسیار زیبار داره به در میگه که دیوار بوشتن و میگه من هرچه عاشقم رند و مست و نمسیه بزار شک تو یارم شهر حافظ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> به حق قرآن که از ضرق و شید بازایی ضرق به معنی ریافاریه شیدن به معنی شیادیه یعنی کلاورد بگید او خبزی حفظ به حق قرآن که از ضرق و شید بازای درست برداری باشد که گوی ایش عیش اصلا به معنی زنبگیست و کلمه معیشت از همینه معاش هم از همینه عش بعدها به معنی خوشگزارونی هم به کار رفته اما اصلا عشق به معنی زندگیست الاقل به معنی زندگی راحت و گوارا میگه دست از این زرگوشه بردار شاید بتون زندگی بکنیم خب سکان چون چپ نگی دو از این باستان عزیزم چیز داری اینا چوریه اینا چان میگن ناچنگ سکان چان من واسه بالا به کینه برد وگر به ره گذری یکدم از هواداری چو گرد در په شکتم چو بر برد ببریزد وگر کنم طلب نیمبوسه صد افسوس به حقه دهنش چون شکر برو ریزد من, فر... من اون فرید که در نرگس تو میبینم بس آهرون که با خاک ره برام فراز و شیر بیابان عشق دام بلا کجا شیر دلید که بلا نپدیدد تون خواه و سبوری که چرخ شعبد باز هزار بازی از اون از این طرفتر برنگیدد فرازتانه تسلیم سربن حافظ بگر ستیده کنید گوژگاه بشتیده خیلی من بله ارز کنم که بینو رازنی از او است، من بارها گفتم که حافظ همیشه مندوهشو به صورت معشوق و در لباس معشوق نشون میداده و به همین دلیل است که مقدار زیادی و همون گفتگووی قبلی رو حبز زدم که قذال قبلی مربوطه به گفتگوی به شاه جای، ولی ظاهرش قذال آشغانه یکی هم نمی این حالا با کی هست من نمیدونم صورت صورت غزل و عاشقان ولی ممکن است که کتاب به شخصی از دوستنش و کسانی که مورد علاقش بودن بوده برحال من دوباره میخونم این که اگر رقم ز پیش فتنه ها برنگیزه بر از طلب بنشینم به کینه برپیزه بگر به ره گذری یکتم از هوا داری چو گرد در پیش شده هم چو بعد بگیزد بگر کنم طلب نیم بوسه صد افسوس زرقه دهنش چون شکر پلویزد من اون فریب که در نرگس تو میبینم بسا به روی که با خاک ره براغ میزد فراز شیب بیابانش اش دام من قال کجا که از بالا نفر می‌زند تو عمر صاحب بی که چرخ خسوب و دباذ هزار بعضی از این تور پتر بران گذشت براستانی تسلیم سر به تا قسمت تجار سفیزی کنی است. بازار بسیار زیبا و خوش آهنگ خیلی خیلی خیلی زیباست توش خیلی هم بازی های لفظی شده یه صنعتی هست به نام تضاب تضاب عبارت از اینه که یک کلمه ای رو که بیارن ضدشن بیارن مثلا در این بیت اول اگر روان زپیش فتنه ها بر زد برای از طلب بمشینم به کینه برخی زد بمشستن و برخواستن زبت این کلمات کلمات نزدی هم مثل این که مثلا پرمو کنیم که او بیاری آتش و باید رو خاکم بیاری یا کلمات زبت هم اینا ارتباط روانی دارن با هم یعنی آدم از یکی از یک کلمه به یاد نظیر اون کلمه یا به یاد اون کلمه میاد چون خود ذهن بی اختیار میره اون طرف اگر شاعر این توجه داشته باشه و بیاد و بیاره اینا رو یه صورتی که البته با استادی تحمل بشه فکر نکنن که زورزوره که اینو آورده این ذهن ازش لذت میداره و احساس زیبایی و هماهنگی میتونه این کار از صحنایه ای که حافظ به برای همیشه به طور غیر محسوسه یعنی آدم مثلا حس نمیکنه کنه بعد یه مدتی فکر کنه تا ببینه که بله اینجا این حساب داشته اگر روام ز حالا اصل مطلب هم تازاده نگه هر کار کنم هم بیچاری دیده بکنم یک کار نمیشه نکنم نمیشه کنم نمیشه بچاسم بازم اگر روام ز پیش فتنه ها بارنید خود مفتون شعران تضاد کرد برای از طلب بنشینم اگر رفتن دنبالش اسباب چیز شده قلب رسه مچاخ کرده روزه بیابروی شده نره از دل کرده بر از طلب بنشینم به کینه درست قدیه میگنم تو نوشته های معنی بشتی میگه کسی دیگه میگفتش تو زن مثل سایه است تا دانبالش میگی از میگویز وقت که باید همی اومدی دانبال کنی الان بر این مسئله عاشق و معشوق هم دقیقا همونطوره گفت من او حالت موجست و کنار روز و شب با من و پیوسته گویزان بر و این یه حالات روانیه که کاملا وجود داره در داستان بی میگه که اینا عاشق معشوق بودن اینا بعد خیلی گرفتاری داشتن و در سر داشتن و بدبختی داشتن و نیست شاهزاد خانون بود که زن یه بزرگی بود اتفاقا اون شب بود بسته مونده بود به طوری که نمیتونست او رو تصرف بکنه بعد برادر فوچی که شاه عاشق این خانوم شد و تا عاشقانه داشتند بعد دایم درد سر دایم رسوایی بعد از متطاق گرفتاری بیچارگی دوست رامین یعنی آقا نصیحتش کرد که آجون جون بسته این رسوایی و این برد وقتی این تو ممکن این زنه که رو اصلا به کشتن بودی بعد هم دست فردا این تو جز مرکانی، جز برمختی، جز بدنامی، جز رسوایی برای خود تو، برای اون خانم، برای خانواده اون، برای خانواده تو چیزی نداره برکن دیگه آدم قحطی که نیست و بذار برو برو مسافرات و بر شاید که فرموش کن اینم هم تصمیم میگیره که این کار بکنم میرم مسافراتو به برابر بزرگ که هم میگه من میخوام برم معنیش اینه که دیگه خانه بذارم. میره و بعد بر میخوره به یه دختری و خیال میکنه که این میتونه جای لیس رو در زندگیش بگیره بنامه گل و او ازدواج میکنه برای اینکه شاید ماجرا جاهای گل رو کنه باید مدتی نمیشه نمیشه و برمیگرده برمیگرده حالا در دوری لیس لیس در دوری معنون چه زاوی ها کرده و چه گریه ها کرده و چه نامه ها نوشته و چه عجزلابه ها کرده و رامینم برشینی باشه که نه من بهتر اینجا زندگی ما تو جدا کنم سرمشتیم و جدا باشه از هم من دنبال زندگی گفتم تا هم دنبال زندگی برو اینا ولی بعد دیگه دنیم تونه وقتی بر میگرده میاد که بیاد دست خانوم باش کنه به تلور خانوم راه نمیگه ایه ایه التماس هی ای خواهش هی تمنه هی به دل آخره خسته میشه به چهاته هست که هفت و از این همه تقاضا و همه تامنا زنهای که راه نمید راه نمیدی شب بردی توی دیاغون این سوار عصف اون بالای پن از این گفته بود ادامه بده میخونم نزدیک صبح بلاخره راه نمیدی نه این نرم نمیشه به محض اینکه برگشت زنه که این باچه خاکه بود سر خودم دیختم رد به سره او میاد دنبالش میدوه شروع می کنه دوباره به خالد کنه تا نه بیه عزیزم بیه چونم نه نشد اون شروع می کنه و به تحت راجب زمین زدن و به همین تحتیب این هیچ دو آمد ادامه فیده می تا بالاخره این گلتنگی ها و این گفتگی ها و این همه تموم شه و دونخبه. بنابراین در روابط عاشقانه این درسته این چیزی که اشاره میکنه که اگه بل کنم یه جور دیگه مواهد تولید میشه اگه دنبالش برن یه جور دیگه این کاملا حالت نفسانی آدمیزاد این پوجه بفرمی که خود بقیق با, با باقیق هم تطبیق میکنه اگر روامز پیش فتنه ها برن برای طلب بنشینم بکینه بردید وگرد به ره گذری ره گذری یعنی کوچه راه وگرد به ره یک تم از هوا داری چون گرد در پیه شده میگه اگه در یک راهی مثل گرد راه از دنبال او برم مثل باب از من میگه داد وقت ببینید راه گذار و, و بعد هوا و هواداری و گرد و باد و ببینید چقدر قشنگ درست هست وگر بره گذارید یکتم از هواداری چو گرد برپیش افتن چو و و نیم بعد خوب چیز وگر کنم طلب نمیم بوسه صد افسوس افسوس افسوس و معنی مصفر است افسوس کردن یعنی مصحو کرد و این معنی افسوس که ما حالا معنی اظهار تأسف و طور ناراحتی به این به کلی تازه است قب این فسوس کردن و افسوس کردن به معنی مصفر است نصر مستر کرد بگذار کنم طلب نیم گوسو ساتھ افسوس ز حقه یه دهنشتون شکر میگه با که مسخه ها می و دست می بسه و عذیت می ولی شیری نوازن حقه رانیه ظرف کوچکی دورج هم بهشت میگن ظرف های که داری داره درش باز میکن. برای گذشتن چیزای کوچیک مثل جواهر مثل انگوشتری و انخال اینا بکر می بهان به هند رو معمولاً، به حقه یهوط میکنن که لب یهوطه و در این حقه هم سی و دو مرداری به و اگر کنم طلاب نیم بوسه صد افسوس به حقه دهنش چون شکر برو بیزد بعد میگه بله تو تو به طرف میگه که تو مثل بسیار مردم میشاره کردی من آن که در نرگست تو میبینم بسا به روی که با خاک ره برا به این بس عب و خاک مهم آورده بدون که آدم حس کنه این بحث قید کساته یعنی چه بسیار من این فرید که در نرگست تو میبینید نرگست مجاز نرگست بگه چش. چشم من این طریق که در نرگست تو میگینم بس آب روی که با خاک ره برای میزد چه بسیار آب روی رو که با خاک راه خاصی می بریم تمام این کلمات به صورت مجازی بکارد آب ابرو با آب روی خاک کشی، یعنی بریزه به از این بریزه به اصطلاح نه همه رو به صورت مجازی بکارد بعد میگه خب این از از لوازن عشقه فراز و شی به بیادان عشق دن کجاست شیرده که از بلا نفردید خیلی خیلی تمام سوکیان تمام بزرگان تمام آرفان همه گفتن که اگر راه عشق میخوای رو بیاری باید به با انواع خطرها و به انواع بلاها و به انواع گرفتاری ها برای رسیدن به تحملش باید عرم سعدی میگه که ساد و تایی میگه اگر مرد عشقی کم خوشگی کم خوشگی یعنی خود در ندی خود روز که نرستم یاد اگر مرد عشقی کم و وگر نه اگه مرده اش نیسی راه آخیت پیشگی و از زندگی درست و حسابی از توس آدم حسابی ایش این کسیگی تو بکن فردو بکن ادارتو برو شغلتو بکن سن تو بگره کن تو میگه کن ولی اگه اهل اش گفت برد و خونه دل ایمال افتاره برد و خونه دل بباید با. دسته مشکل به باید اشک بر اشک همه ایشیزه غیر ممکن امکن به سر آدم بیان باید باید اما به اشک فراز و شیب و بیابن دام بلا به همین دلیل هم هست گروه میان دار این دام میرن مردش نیستن بر میدار فرازشی بگی آبان عشق دام بلاست کجا از چیز دلید؟ تو از بلا نفرد آقای زهیر الدوله دامد ناصر دینچا دفتر ناصر دینچا در عقل خودش داشت و وزیر دربار بود مرشدش صفی علی درش دست دو دارد کشتون بگیدی شب بره گرهی خرسه شعر معت و معت بخونیم بره سرخوری توی آقون رو گرهی برفت شمبهای متوالی زهیر دو این فقط به زبون از اون میاده یعنی آدم خیلی باید باید زهیر اول باشه اون چیزها داشته باشه اون خانم زنش باشه و وقت قول مرشد رو بازا به این تحصید قبل می کنم پاشید اگر رفت اگر شد میشه و نظاهر این بسیاره که پیران همیشه کارهایش هم میگفتش که بر بر و توحید که یکی از مریده های شیخ نوود شیخ عبوزاید عبول که این خیلی بود کشیده بود و خیلی به زن خکته بود و خیلی به تمیزی خود ارز کنم که اون تو کشه دیگه و مرتب بودن سروازشان ها خیلی توضع داشت و خیلی دقت داشت که ازش مرتب و منظم و خیلی چیز باشه یه روزی شیخ بهش که اوکیه کنم میشه میریم ایدونه معهی فروشا میبینیم که در اون روز به خصوص که معهی بونگ خیلی بدی برای این که این بساله که نبدی توی یکی از مجموعه همثال من خوندم یه سود ماهی به گند ماهی نمی ارزا توی <تصفيق> <تصفيق> اون کسافت و گند بازار گفت گفتش که میری اونجا بازار یک کیسه دونی ماهی میگیری اینو کل میکنی بعد میدیری میری خانه خواه شد بخون چقدر مثلا یک ماهی را اقای رو تو کشیده بلند میشه و میره و این مونی ماهی میگه میگرده به هر بد وقتی میده مید دیگه مید بعد هم میره خودشو تمیز میکنه این ها بعد این که کاش تمومشو میده به خانقا شیخ یکی دیگه از ماریدان رو بلند میکنه میگه از شو موسن احمد حسن میگه وی یکی بس این اقا رو بگی این اقا رو این تو کشیده بعد بگه باید بره دونه دونه ای بعد دو نه دو نه که سابید بعد دو نه دو نه که سامي گلغزار حسن بپرسش آغاشنا این ساعت تو در این گلغزار رو دیدین؟ من تجربه کردم بعد اینا نمیپرسن مردم ترسینن برو کار خودت که تجعن ندرن یک نفر نمیگه که من اینو دیدم کیستم های پولش شدم بعد دو پشت مردی صد می نه تو با بند چیشو اصلا مردم اصلا نه به فکر این هم که تو طر تنظیم بشه و تو کشته بشه نه به فکر اینه اصلا کثافت تو خودت دوربین خود درست گفتی به هر حال بر چیز در منطقه پیر عطار این مراحل و این ها رو میگه و خطاهاش رو میگه و مسائلش رو میگه اونجا به تفصیل صحبت میشه در مذهب مولانا به تفصیل راجع به مسائل صحبت میشه ولی مختصر برش تمامش اصلا بر اختصاره ایناست که رو کلمه میگه و فراز و شیر به بیابن عشق کجا بلاست شیر دیدی؟ که از بلا نفر بیزد تو امر خواه و سبو بید که چرخ باز بازی از این طور پتر زد. حتما اشاره به یه حادثه در دوره زندگی حفظ و من باز دوباره به دوستانی که اینا رو گفتم ولی خب روی باید ترچند وقت یه باید, باید بکنم. تاریخ روزگار زندگی و حفظ باید بخون شما و کتابی داره مرم دکتر غنی عبیسی تاریخ زیاد از تاریخ های قرن هشتم ایران تاریخ نقشه دکتر غنی مرم دکتر غنی منم تاریخ اسراحافظ و این کتابت خون شاید در تمام دوران های تاریخ ایران هیچ دوره ای، هیچ دوره ای به اندازه دوران زندگی و حافظ امیخته با فساد و کسافت و و زشتی و کارهای بد و کارهای خیلی عجیب و غریب اصلا نبوده یعنی فاسدترین دوره و مانهدترین و کسیبترین دوره تاریخ ایران که بخن بخونم بخونیم، این وردنشت حوادث عجیب و غریب اتفاق دادی در اون روزگار که اصلا باور کردنی نیست خب دیگه اون روز هیچی بعد از دو دوتا حمله خیلی شدید محول تایمور بوده تمام شیرازه منکه اصلا گسسته بوده هر... موشه ی دیستر برکرده بودن هفته دلشون هست میکردم همه علاق چچات علاقای زیادم داره و هر حال اون چه هست اینست که اون چه ما دیگیم اینست که اینطوره و با واقعا هم بعضی سحنهاش هست که من اگه بخوام که بگم شعر برم. باید خودتون بریم بخوامیم من نمیتونم سای فرس بگیم خیلی اصلا انداخشتوی از مردی و بشرفی و دروخ ان با اصلا خسار خواست باور نگرد نوع... بله بله بله بله ارز بله. کنم که ملو تغییرم پارس و ازربایجان این همه این باقی درم زیر چیزه تو آمر خواهیم این اشاره به اون فتبه هم این که چند جا هم این مسئول و اونجای که میدری را رفتم این احوال می خندی رو گفت سعب دردی بلعجبقاری پریشان آلنی حتی تا این حده که آرزو میگونه تیمور بیاد خیز دا خاطر بدان ترک سمرغندی دهیم که از نسیمش بود یه مولیان رو یه گفت بلکه این کسافتی دو کنه غرب این بله، بله این کلمه شعوزه و شعبدست به معنی تردستی و چشمانگی و در چیزی در تداول عام رو محله شده شعبدی ولی شعبدست و به این صورت شعوزه در کهلو زمنه به این صورت آمده مرموم بحار یه بار البته این حدسه این هیچ معلوم نیستش که چه حدسش کچه مرموم بحار یه بسید با خوشحالی تمام گفته آره پیدا کردن این شب بازی یعنی بازی هایی که شب تقریهاتی که شب میکردن برای سرگردن مردم البته شب محیط بسیار مناسب تاریست برای اینکه برای اون تارکی شب خیلی کارا از نظرها پینام اونجا نکارو بکنن که با فلیس برای خوشن این روز این پار عملی نیست برحال هیچ معلوم نیست این چیز علمی داشته باشه یعنی ریش علمی داشته باشه این حقص و چون مرون با ارزاده بود من اینجا گفتم برای اونجا تو عمر خواه و سبوری یعنی عمر خواه من س که چارکش شو باز هزار بازی از این تورفتار ترفه یعنی چیز نو چیزی که چیز جالبه و جواب چیزی نو چیز چیزی کم هزار بازی از این تورفتار برانگیزد این شو بادی بازه در زم باتر اجود داشته میشه که در این نهال تو اون پوشش میاد اینها رو باز میکنن نه ولی 50 دفعه که نمیشه یه بازی رو ببینه که آدم دو دفعه دو دفعه که دیگه دیگه واسهش میاند میشه این است که اینا بعد دائما بازیاشون و چشمه های کارشون رو عوض کنه و مرتب اینا رو تعلیمات تازه بیرون کاری تازه میکنن صورت کارشون عوض بکنن اون کسانی که استعداد این کار ندارن و نمیتونن ناچار یینداش عوض بکنن از این ده میروند از این ده میروند یهبار هم برات ولی با ارائه ها نمیشه میگه که این حوادث گنابونی تو هست میگه تو فقط عمر بخوا این چرخ و باز هزار بازی, بازی ترکتر از این وصد رو وجود میاره و بعد برابر رحمی رو میخونیم و بعد توضیحش میذاریم برای بعد از خنف پوست غزن بعدی غزالیس در ستایش قماندین محمد صاحب عیاد ارز کنم که بخونه های صداعت پر به حسن خلق وفا. به پسن و و وفا کسی به یار ما نرسد را در این سخن این کار کار ما نرسد اگر چه پس بروشان به جلو آمده کسی به پسن ملاحظ به یار ما نرسد که حق صحبت دیرین که هیچ محرم را به یک جهت حد وزار ما نرست زار نقش برای از زکن, پس، زکن پسونت یکی به دن پذیری نقش نگار ما نرسد زار نقش برای از زکن پسونت یکی به سکه صاحب پیار ما که لازه رنج حسودان مرنج و واسد باد که بد به خاطر امید بار ما نرسد چنان به که اگر خاطر به شمید به بار خاطری از ره خاطر ما نرسد به سورت حافظ و ترسم که شرف قصه او به سمت کار، شب کار، گار، مار بقید، یک بیتن برناسطور مرمان قبضانی نداره فریق، کافله امن فریق از نسخه مرمان قبضان داری فریق، امن کانچنان رفتن توی گردشان به هوا و دیار ما نرسن. من دوباره وارد میخونم غزلو اصلا بر م توانین محعملد ساح بواره و یکی از غذا خیلی خوب برجه یک حرف بزی غذال زیباست فغلله به حس غ ووقفق کسب به یا نه مرس تو را در این سخن این کار و ما مرسد اگر چه می فرشان به جلب و کسی به حسن ملراحت به یا ما مرسد به حق صحبت دیرین که هیچ محرم راز به یار یک جهت حق بزار ما نرسد به به بازار کائنات آرند یکی به سکه صاحب عیار ما نرسد زار نقش برای وزه یکی به دلپذیری نقش نگار ما نرسد پافله ام چنان رفتن که گردشان به هوای دیار ما نرسد دلاز تقن حسودان مرنج و ایمن واسق باش دلاز تقن حسودان مرنج و واسق باش که بد به خاطر امیدوار ما نرسد چنان به که اگر خاک رحشدی کس را قبار خاطری از رحکزار ما نرسد به صورت ترسم که شرح قصه ای او به سم افاد چک که ما نبیزم که کمی استراحات بکنم این کنم که این غزل در ستایش باز همون جور که صحفتش شده غزل در ستایش قوام الدین محمد صاحب ایاره اون زندگی دیگه ها پس سه تا قوام الدین تنصیب یکی اون آخری قوام الدین عبدالله استادش بوده و معروف بوده دامشنا در خیلی درجه یکی سرشناس بزرگی بوده معروف به استاد البشر که اسمش در دیوان خارج نیامده ولی در مقدمی که محمد گلندان نوشته به دیوان خاجه اونجا میگویسته که در کلاس های درس عوامدین عبدالله استاد ما ما اونجا که بودیم اصفار میکردیم که خاجه این شعراش رو جمع کنه و کنه و به صورت یک دیوان درداره و خاجه همیشه تفره میره و خلاصه کلامش این بود که مردم روزگار نامردند یه کلاکی دست من این است که منتشر نکرد دیوان رو به اسم خودش تا رفت اما دوتای دیگه، یکی قوام الدین حسنه، یکی هم قوام دین محمد صاحب ایاره، اون قوام الدین محمد ابن علی، صاحب ایاره. صاحب ایار بهش میگن یعنی زراب خونه دولتی درسش کنید. صاحب ایار به معنی صاحب زراب خونه و به اصطلاح در پول و مسکوکات ناز که تغلب نشید این خیلی آدم خوبی بوده، اون قوامدین حسن هم وزدیب بوده، اینا اون هم آدم خوبی بوده ولی این قوامدین محمد صاحب ایار رو گویا به دستور شاه جا به صورت بدی می کشن می بر صورت کسانی که نسخه دکتر خان لبی رو دارن، دیمان و رو، اونجا ما سران خاجه رو خیلی به احساسی زدم من یه بار منجا فوتوگرافی کردم تقصیر کردن داوود بن بیستان. اونجا صحبت اینا همش شده هیچ لزومی نداره که من بیش از این حرف بزنم. اونجا. عرض کنم که حاجه یک قصیده داره از سه تا سه تا چهار تا قصیده که بیشتر نداره، یکیش که قصیده بسیار زیبا هست در متن همین فرمان محمد صادق بله ظاهرم من حالا به هیچ مور زن قریب ندارم بله, بله. این رسیده ای که در مده محمد صاحب ایار هست شروع میشه از پری نتوان با آسانی هزار مسته در این خواه به جز شکر همین و یه خوبی را به خاتمی نتوانزد بند از دل ای ماه بزار سلطنت دلبری به دان نرسد که در دلی به هنر خیشتا بگن بگنجامی. چه گردها که برنگیز دیگزه هستی من نبا خسته سمندد که تیز می رامی بیار باغده رنگین که یک حکایت پاست بگنگم و بتونم رخنه در مسلمامی که خاک پوی سموهی کشان کتاب من مست به کونگ میکده استادن به به هیچ ظاهد ظاهر پرست نن شستن که زید خرقه نزن نه داشت پنها می به نوم دل بند هیچ خیلی, خیلی کن خداش نگه دارد از پریشه می نگیر چشم عنایت ید باز و اگر نه حل بگویم با اصفت سرمی قوام دفلت دنیا محمد بن علی که میگرخشدش از چهره فرق و بعد مزش میکنه یه مداری زایران خیلی باش بوده خیلی خصوصی بوده اینم ادام خیلی خوبی بوده میگه شنیدم که زما یاد میکنی گهبه ولی به مجلس خاص خودم نمیخوامیم طلب نمیتونی از من سخن جفا این است، نه با تو چه بحث است بر سخن داریی؟ زهاء و جهان کس که بنده جام نکر لطاف گفته کمی با کتاب کورانیی و آدمی نت نزدی سیم من قر مات کردن من همه کسی رو مات نمی‌تونم. هزار سال بقا فق شدت مدار یه شنی به چون تو ارزان با اصلا که بسطین مفصل بسیار قشنگی داره و چیز من میگم روی تون کسانی که نوسته چاپ از می‌ذارن چاپ خانوادگی هستی اومده در جلد بیرونش هر حال این وسیله رو خودشون مطالعه کنن خیلی قشنگه زیباست این غزل بر مدح باسر عوام الدین صاحب اواره احتمالاً چاپ توهیدیان باشه که الان من حضور ذهن ندارم دیگه برجت طرف گفتگو میبینید که باز این غزل ظاهرن به نظر میاد که غزل عاشقانه است اون نباری نه طرف گفتگو هم این خاجق قوام الدین محمد صاحب اول یه غزل دیگه هم داره که چقدر دارن که در عالم الدین حسن دارن قوام الدین حسن قوام الدین حسن برحاد به حسن خلق وفا ایم اینا ستایش قواندی محمد سارعیاره و صفات او رو که در عالم دوستی با هم داشتن میشموره و بل این بسیار آدم خوب پاکیزهی ظاهرم دیده به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسن تو را در این سخن انکار کار ما نرسن انکار توانیه منکر شدن و در حقیقت قبول نکردنه ولی این کار و کار با هم جناس ناوسته یعنی کار در هر دوست تکرار شد و این رو بهش میگن جناس ناوست یا تجمیز ناوست به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد تو رو در این سخن انکار کار ما نرسد نرسد یعنی حق نداری این کار بکنیم در حد تو نیست که این کاری بکنیم اگرچه حسن فرومشم به جل را اند کسی به حسن ملاحت به یار ما نرسد فکر نمیتونم مشکلی داشته باشی که من اینجا بگم روشنه به حق صحبت دیگیم صحبت معنی دوستی و به حق صحبت دیرین قسمی یعنی به اولش قسمی یعنی قسم میخورم دوستی و رفاقات دیرینه به حق صحبت دیرین که هیچ محرم راز به یار یک جهت حق گذار ما نرسد یک جهت یعنی رو راست. یعنی از یه راه معلوم و چیه یک جهت یک دل یک زبان نهانه یعنی رویاخت و یعنی صاف و خوشباته بعد که صحبت دیرین که هیچ محرم راست به یار یک جهت حق گزار ما نرسد گذاردن و زبانی انجام دادن و اجرا کردن نعناز گذار یعنی کسی که نعناز اجرا میکن انجام هرگزار. که هر اینجا ملاحظه می‌فرمید که چیزی ارز کنم که سفرخص گذار یعنی کسی که تشکرش اظهر می‌کنه اینا این گذاردن رانی انجام بدن و اجرا کردن می‌وازی است گذار نقد به بازار کائناتارند یکی به سکه صاحب ایار ما مرستند حالا اینجا در این بیت باز حافظ اون بازی ها و اون هایی که داره و اون ارکوبات که داره انجام میده. ارز کنم که نقد به نوعنی طولیست که وزنش و ایارش مشخص شد. الان ما مقدار زیادی وسیار از گرفتاری ها رو نداریم اصلا. با یه تلفن یا با یه کلمه حرف یک میلیون هفت پول از یه قاره به یه قاره دیگه میره ولی اینطور که نبوده که مردم طولشون را با فلز گرن با هم میخواستن در اختیار خودشون بشه بعد دستگاه دولتی هم نبوده که سکه بزنه این پول زر و یا اگر بوده مقدار محدودی سکه میزنه ولی اینطور اون دستگاه دولتی هم باید با دست باید بشین سکه بزنیم یه باز دخون زهرگری باید زرگری باید باقواند. این است که اغلب زرگرا و کسانی که بهشون گفتن سر اینا کار پول رو معموله پول رو در ادامه میدادن سکه ها رو با دست میساختن و قالب میزدن ممکن بوده وزنش تو باشه ممکن بوده اگه سکه زنی دوز باشه یا یه خوره دوز باشه یه نادرست باشه. تغلب بکنه بر ایایی بنابرایم شما پولی که میخواستیم تعبیل بگیرید. بعد یکی سری بیاریم خودتون که نمیتونسیم تشکیز کنیم یا ازن میابردن به آن نقد نقض نقض این میامده دونه دونه این پولا رو میزده به محک پنک کارگوش هایی رفتین یه سنگ سیاه جلو اون سنگ تلاکی میارن خط میکشون رو اون سنگ ایایارشون نشون می‌نو بعد مهک بزنیم نه حیاش هم وقتی میگن بعد وضع می‌کنه هرکون درست رو قبول کنه هرکون درست باشه این بار بگی اینا رو قبول دارن نه قبول نده حالا وقتی که معامله رو هزار 5000000 دینار 7000000 دیناره یک هفته نه 10 روز طول می‌کشه تا این پولا رو بین دونه, دونه مهک بزنن و بعد بکشن و تحویل بگیرن ما اون, اون آقای نوآب از طرف شما تعهد می‌گیرته مید بده به طرف و یه دستمزدی، یه درصدی یک درصدی،, درصدی نیم درصدی من چه چیزی حال دستمزدی میگره این کارو بهشون گفتن نقل جویا کردن ضرورتی مستر رو از ناصره رو بهشون میگفتن نقل الان هم که در عدب نرد میگن به همین معنی یعنی بعد چیزی رو بگن نیکشم بگن کریتیک به با بعد گاهی برای آسان شدن کار صرف که اسم و شهرت و اعتباری داشتن اینا میان آن باین طول سکی خودشون یا پولی که خودشون نقد کرده بودن یعنی نحک زده بودن،, بودن می رفتن تو کیسه ازار دینار مثلا پونصد دینار برای شما رو می کنی خود که من تو هزمم سر صرف هستم فصلی که تو 500 دینار طول اون ساعت نسخال دور تلاست و ایار مثلا نرد برسه به این ترتیب اینا وقتی که بیکار بودن مینشستندیم و گرفت دولار رو نقض میکردن،, میکردن بعد وقتی کسی میخواستم معامله کنه اون این دستمون سلو و این پورو دیگه این از گرفتاری ساعتها وقت ساعتگاردن این نقض چیز میشته به صلاح فارغ میشدم بعد پولی که نقد قادی شده بود او رو هم میگفتن نقد این که میگن پول نقد یعنی پولی که دیگه هیچ خدشه ای درش نیست دیگه پولیست که میتونه آدم تصرف کنه بدون هیچ گرفتاری و کمزیات هم نداره این رو بهش میگن نقد حالا میگه هزار نقد به بازار کاینه آتارن بازار بر بارسی باستان بر با باستان از ازا شهر شهر یعنی چریدن ازا هم همونیست که در تارسی شده با ازا شهر یعنی با هم چریدن بینیم همزلی کنم و با بازار جایی بوده است هنوزن در دفتان اینا هست که میان اونجا و جنس و با جنس عوض می کنم با در بعضی بازارهای دفتان اینا به این ترتیب میان عوض میکنن کنم چون با اداره نمیشه جنس رو ببن او رو بازار و با هنوز در گیلان یه جایی هست رو شکن واجارگاه واجارگا یعنی بازارگاه واجار در دیگه از بازار به معنی محلی که کالا بدون بخواهات پول نعوضه این بازار بعد به معنی به طور کلی به معنی محل دادو سفت شده که در شهری جز قاعده شهرسازی قدیم این بود که نقطه ای رو به جهت دادو سفت استصاص میدادن به هر راسته یعنی هر سمتی میمیدن در یه قسنتی اونجا مرتضیات داشتن که این سنت بر میگه که هزار جور نقد به بازار کائنات کائنات یعنی کسان با چندگانم موجود است که سنت خدا فرض کرده. میگه در این بازار کائنات هزار جور نقد میرن یکیش توسط کسات عیارمان حالا بینید چقدر بازی قشنگ چون قهر این پور سکه زدنه کار این افرد و صحبت صحبت بازار و صحبت سکه و صحبت نقد، بلی مطلب به کلی چیز که یعنی هیچ آدمی جنس خودش به خوبی جنس این آقای قمادی محمد صاحب ایاری نیست بلی اینو به همون اصطلاحات مربوط به صاحب ایاری و ذرابخونه و نقد و بازار و سکه اینا با هم چیز کرده و بیتی ساخته که میگونی کسی نو می کنه این زیبایی بعد از این بسازید ازار نقر به بازار ها آرند یکی به سکه و سکه در این حال وعنی جلوه و وعنی زیبایی هنوز میگن کار با سکه شد یعنی روبراشت خوب بود و جلوه کرده اینا سکه وعنی اولور وعنی جلوه اونم در این حال وعنی سکه است که کار آقای صاحب ایاره است هزار نقش به بازار کائنات آرند یکی به سکه صاحب ایاره ما نرسند هزار نقش برای از او سون به معنی خلقت سازندگی خدا رو نکرم سانه کلکم اصلا معنی نهی کلک نی نی تا نی رو برای قلم به کار میگردم دیگه قلم هم قلم نمی بچه که می نوشتیم نو این نیه که بیشتر مخصوص نوشتم ولی به هر حال نی رو برای نوشتم به کار کم کم کل که معنی قلم شده علا اصلا این نی هزار نقش برای یک کلک سون از کلک از قلم خلقت هزار نقش پیدا میشه ولی یکیش به دلپذیری نقش نگار ما نرسند ببینید این کلمات و نقش و نگار و دلپذیر و کلک و اینا رو چجور با هم آمیخته که هر کدومش صد تا معنی در خودش دارید نقش برای از کلک یکی به دلپذیگیه دلپذیر یعنی چیزی که دل آدم خیلی راحت میپذیرینی به دل, دل می نشونی به پذیری نقش نگار ما نرسن در نگار به معنی معشور هم هست به معنی نقشی هم که از کل میاد نگار نقشی که از کل جاری در این, این همه این حساب رو از ذهنش کرد طریق قابله یعن دریک از عادات عادات تواجج تواجج یعنی اظهار درد و هر سواد یعنی ای با ای داد ای بی این اینا ای کلماتی است که این کلمات عادات عادات حرف یعنی هر پیس که یه چیزی رو می‌رسونه مثل خوش و نوکر این به معنیه تشویق و تحسین و تقدیر یا دریق برای نشوندادن حسرت و نراحتی این عدات تحصر و توجهه تحصرم لعنی حسرت بردن دریق یعنی درد ها. حسرت ها قافله عام کنچنان رفتن دوره حافظ ارز کردم که دوره ناامنی بود چه دوره ناامنی؟ من چه بگم؟ ناچارم بگیم یکی یکیشو بگم یه مرد که جلاد خونریزه به درستوکهی در اون روزگار بود نام امیر شیخ حسن خوچه امیر شیخ حسن این کامی که از خون میچکید و مرد خونریز جلاد با محابت سیاست مدار که خیلی هم شجاق بود؟ این آقا که هزاران دشمن رو سرطف کرده و گرفته بود و چکنجه کرده بود و, بود و بسته بود همه این کارا یه زن سرگلی داشته و این زن سرگلیه ایشون با یکی از امرهای آقا به نام امیر یعقوب یه سر و سری سر داشتن خوشحال چونه ده کنم که امیر یعقوب هم رفته به یه ماموریتی. امریکی جنگی یا خیلی جنگی بند را خیلی دیگه بعد امیر شیخ یه بار امیری یعقوب میخواه بسط کار میخواه حالا معلوم نبوده که میخواستم معلوم دیگهی بهش رجوع کنه کار دیگهی بهش بگه یا بویی برده بوده از این که ایشون با بانو سرسری داره پراری به گوشش چسیده بوده احساسی کرده نیشو علوم نیسته برحال ایشون این رو میخواه خانم خب چوبه که ورنوی گروه دوسته خوردار میشه دیگه خانم میترسی که مواد رو یه وقت گرفتاری باشه و اگر بابا بیاد و یه چنین بساطی باشه خود خانمان به خاری خار برحال باید جون اینا رو به دعا بکنه و تکری که پیش از این که عمیر شیخ حسن بر او شام بخوره بر او چاش بخوره او بر عمیر شیخ حسن شام بخوره و قبل از او حتیب کار میده با کنیدستان میخواهش از تقه حتی به زن این هنوز نمیدونسته که این بوی برده یا نبرده یا چه شده یا نشده فقط کاری که کرده که امیری عقوب را ازدار کرده معلوم نیست که حلت چید از ترس اینکه که یه وقت گند کار در بیاده کار بالا بگیر و گرفتار گرفتاره که عذاب و براحتی بشه با کنیزتان خودش قرار میذاره و شب که امیر شیخ حسندشید میارن منظر در محل استراحت بانونی که باید مثل رزوان، مثل دربان بهش قصائل آسایش ایشون رو پرهم کنه با کنیزتان توطعه کرده بودن به ترتیب بسیار بسیار قبیهی که من هنوزا موندم چجوری بگم و هر حالشونو میکشن و او این بوده که ترتیبات میدن و میچسبن به اساطل و اعضایو و انقدر فشار میدن تا از درد انوشه خسن میبیند نمیدونم لحظ بودن انقدر که برستن خدمت بکنن بهش برای لیشون با فشار دادن اون آزو بسیار اساس می کشم یک حوادثی تاریخ قبل هشتان بخونید خوزون و فراوان حضور و فراوان یه مرد که در کرمان بوده فهرمان اسد انقدر ضرم و بیشرفی کرده بوده که وقتی کشتنش لشش رو مرده شو آقا نزدن در دکون غصابی مردم بادن دو سیر و فنگ سیر گوشت گرفتن از تن این بردن خوردن برای که کینه خودتون رو ثبت یه چون این حوادثی در اون روزگار اتفاق اینی که میگه که قافله امن طوری رفته که گردش دیگه و هوای دیار ما نمیرسه اینو ما فقط از دور حس میکنیم به دستی از دور پراخش داریم میگه هست درد که قافله امن، قافله آسایش چنان رفت که گردش هم دیگه به هوای دیار ما نمیزند. بری قافله عم همچنان رفتند که گردشان به هوای دیار ما نمیزند. اینجا عمه تو معروم خان معروم بهترم هست. قافله اون در دو نست هست. این غزال در دو چهار و سیس و بر نوه نسخه دو نسخه عمر باقش عمر خبت خیلی خوان رو گذشتی که رفت رف خیلی خیلی قشنگ نمیشه به گردشان و هرهای دیار ما که اون لطف رو نداره که عمر درست هست همیدیم از همیدیم بلاز تا و باش به معنی اطمینان و خاطر تا اصلا به معنی تا انیز است سر نیزه اون که بهش میگن سنم سنم سر نیزه هست تن به همین صورت در غزل آماده تن به عنی تن که تیز نیسته از چوبه تن نیزه تن در وقتی که حریف مرد شجاعی بود و همسر مبار مبارز میکنه حاصل جنگ حسابی بکنه با سر این عیزه باش رو اونم با درد و رفت. وقتی حریف کسی بوده که این او رو همسر خودش نمیدونسته همچنگ خودش در مبارزه نمیدونسته یا به هر دلیلی نمیخواست تو رو بکنشه با تای نیزه تیمیزد رو اصل میدونسته اینه که تقنه زدن و زدنه و تقن, تقن... یعنی زدن و تقن نیزه که موجب خاری و خفت بسیار میشه اما موجب بعد نمیشه این از که بعد حرفای کچه پولی زدن رو عرض کنم که با معموانا کسی چیز کردن دوشه کناه زدن رو گفتن تقن و زدن یعنی زدن و تعنیزه اون منزله خفی... برای خفید کردن و برای مراحت کردن نه برای خوشتن برای بردام کردن و برای خار خفید کردن دل از هستودان مرند شد بر اون روزگار فسادی که به عرض کردن به خصوص حافظ بارها از کسانی که او راش میوردن عرض میزنه میگه حفظ, می حفظ. لوط زن نظمه تو میچکر حاسد چگونه نکته تمامت برد که خیلی راجعه به حاسد کسانی که باید و عشون ردن خیلی حافظ حرف میزنه یکشن همینجاست دیگه اصلا نومید نشاوید بود از تن حسوده دل شاوید که چوبه بینی خیرتو در این باست من اینجاها بکشید بله قمناک نباید بود در غزل صد 57 نسخ نمون خوندری که شعر خوش تا تا که از این باشد یک ناکه در این معنی از این دفتر گفتیم امین باشد میگه قمناک نباید بود بس تعن حسون دیده باز دوباره شاید کچو وابینی خیلی دت در این باشد. اینجا میگه دلاز تعن حسوندان مرنجو واسد باش اونه جان چرا که بعد به خاطر امیدار ما نرسد یکی از خصوصیات شعر حافظ افروختن نور امید در دلهای پاری حافظ درمان بخش دلهای شکسته است یوسف گنگشته باز آده همه خوبی احزان شود تو گلستان اما این دل غم دیده حالش پیش شده، دل نکن این سر شولده باز آمد به سامان نم نه یا اون چیزش چیه که بر سر ها, ها من که گرزه دست بر یا بس تقو زن تو قصس سر منظر دل نیست جا صحبت اعدی دی چو بیرون رو برشته فرشته نظایر این بسیار بسیار زیاده در شعرهای حافظ و همه اینا شعرهای حمومت بخشیست که مردم ایران هم در طی این مسائل و نباعبی که ما یک کچولوی دوشه خیلی کچه که شفقت دیدیم اینا مدونسشون و به اصطلاح بخش دلشون و تفریت که هندهشون همین شعرهای حافظیست این است که اینجا هم همینطور که بعد به خاطر امیدار ما نمیرسیم دلاز تحن حسول دان ملنجو باسق که بعد به خاطر امیدار ما نرسیم شاید شاید برحال حافظ از دوره‌های خیلی خیلی دور یعنی از دورنهای خیلی نزدیک به روزگار زندگیش معروض شده به لسانه معروم دوید روحان لاریتون توی دیوانش نوشته که مثلا چندی سال بعد حافظ رو بسنقه ولی من بر تسکیه دولت که در همون عوان روزگار رو حافظ حالا یاد ندارم اینجا یاد داشتم نیز که برای بگم اینا تو زهن آدم که نیمونه ولی من پیدا کردن جاهایی که حافظ به حافظ بسنقه کتاب شده و خیلی خیلی نزدی که روزگاه به این فکر می‌کردن و این فکر اثر نبوب پوغل عاده ای او اووده که فکر می‌کردن که این کلام از آلان ایگه و خوبهاش فال زدن در زم بله امید بخش می‌ده یعنی همیشه منتظر این بودن که ای کلام تصدیب باختی از لبان ها بشه. طبیعی است چنان بزنی که اگر خواهد که اینها از اصول در بشید اصول تصفید بود چنان بزنی که اگر خاک ره شدید کس را خاطری از ره دوزار ما نرسن طوری زندگی که اگر خاک شدی، گرد وجود به کسی نمیشون قواری به خاطر کسی از این خاکتون نشید چنان به زی به زی از زیستن طوری زندگی کردن چنان به که اگر خواه که رخشدی کس را خاطری از رخ دذاره نه نرستم و با بالاخره آخرش با همون لطف کلام که داره لطف وقامی که داره و همون حسن طلبی که داره اشاره می‌کنه به دوره شخص جای به سوخ خفزه ترسم که شرح قصه او به سمح تابچه های پاهمکار ما نریصد. قصه، که این جمله لازمی ترمید، اصطلاح خاص دیوانی و ترکیب قصه برداشتن. قسته برداشتن. قصه برداشتن, <تصفيق> برداشتن همین کار که این اشخاصی که میان اینجا این, این فلاکات ها این بست درشان نیفتار نظیرین میده کسانی که تظلومی داشتن شکایتی داشتن گرفتاری داشتن میامدن و این دو در چند کلمه روی کاغذ نسمت هم بزرگی مینوشتن و این دو سرچوب چوب می یا به یه تردید این رو برد می جلو پنجره دستگاه حکومت برای که اون حاکم یا کسان حاکم به هر حال ببینن این را بدونن که این هشخاص به فلان شکایت و اگر لازم بدونن تیان به شکایتی مسیدی این کار رو یعنی نوشتن اون شکایت و اون تغییب بلند کردن شده میگن قسط برداشتن با اصطلاح قسط برداشتن در چهار مقاله نظامی عوضی آمد بنابراین شرح قسطه او یعنی گرفتاری که داره یا داستانی که داره که میخواد به شاب بگه انجام بده یا برال عرض حالی که داشته این قسطه به اون معنی هیچ به معنی عبدا معنی معانی که تا امروز از قسطه سراغ داریم نیست و برای این کار کارهای مختلف هم یکی این بود که لباسی از کاغذ تنشون جوکران من به نظرم میاد درست این صحنه‌ای که باز یه فلاته، یکی از این روی که از اون رو نمیزنن، رو پشتشون برای تبلیغ یا را میذارن، یه چه کاری جوون، که باز مطالب و مینوشتن، این کاغذ این جامعه، میگه کاغذ این جامعه به خونه بشویم که فلک رهنمونین به جای داد نکرد، این جامعه کاغذی که شعر مولانا هم هست و جاهای دیگه هم هست، و اهلان روی این جامعه با مرکب سرخ مین رشتن تظلماتونو این بازیایی که داریم این, این کاراون بازی ها و این تومار بازی اینا خیلی کهنه است چیز تازه‌ای نیست که فکر کنیم مربوط به اون جدید و تازاست ای اینا این اشاره بدیم و میگه که بسو حافظ و ترسم که شرح قصه او یعنی کاری که کاری که تا چالش داره فقط اشاره میکنه پر که شرح قصه او به سمع پادچه های ما نرسند. این پادچه ها شاه شجاعه برای اینکه هنوز قوامدین محمد زالعوار زنده بوده و او در دوره شاه شجاع اینا مثلا قرآه نیست که میشه از روش به کم و بیش تاریخ سلوده شدن غزال و حبز. که این غزال قبل از بطل قنامه بید محمد صاحب ایار که تاریمش معینه و در روزگاه شای شده ساخته مثلا اینا قرایش که دیگه بیشتر نروطه و احل تحقیقه و کسانی که بارید میشن و این قراره نو میبینن و دنبال میکنن و چیز میکنن این به این تبدید میتونن چیزی رو پیده از بعدی دیگه شروع نمی کنیم برمیده بسید ایده بیشتر نمونده من فقط میخونم اشن ازن رو و تاون میکنم چیزو میتروند که هر کرا از سد هر کرا با خط سب سر سودا باشد پای از دایره بیرون ننهد تا باشد من تو از حال که لحد لال سفت برخیزم داق سودای تو هم زر سویده باشد تو خود گوهر یک می کجایی آخر که از غمت دیده مردم همه دریا باشد از بون هر مجمعات رواند بیا اگر از میل لب جوی و تماشا باشد چون دل من دمی از پرده برون در دراز که دگرباره ملاقات نپیدا باشد زل ممدود خیلی همه زولت توام بتر با کنداری صاحب برآوردی لشی با باشد و حافظ نکنند از سرگرامی این